سوره قیامت که از سوره های مکی هست و سی و یکمین سوره مکی هست از اون او در اوائل نازل شده در این سوره بحث قیامت میاد همونطور که از نامش مشخصه در گذشته بحث بحث توحید بود که بعد از بحث توحید دوتا سوره در باره قرآن آمد که مبحث توحید را از قرآن بگیرید خب بعد از بحث توحیدی که از مسائل اصولی و اعتقادی قیامت هست لذا گویا اشاره هست به این که بعد از موضوع توحید مسئله مسئله قیامت هست و مسئله قیامت از اینجا بیان میشه تا سوره طارق، والسمائه والطارق. تا اونجا مبحث مبحث قیامت هست اما تعبیرها متفاوت هستند خداوند عز و جل با الفاظ و تعبیرهای زیبا و مختلف اثبات می فرماید قیامت را اما آغاز با سوگند شروع میشه چون که مسئله قیامت واقعا اهمیت دارد و باید هر کسی در دلش جای بدهد که قیامت برپا میشه در دل هر مسلمان باشه به این خاطر خداون برای تأکید سوگند یاد میکنه لا اقسمو این لا لای زایده است برای تأکید است بازمو یعنی قسم به روز قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه قسم به نفس لوامه الله عزوجل نفس اللوامه را هم شاهد میگیرد نفس لوامه چیه در این باره ما تو قرآن مجید که برای نفس و صفات نفس ما واژهای خواندیم کلمات خواندیم نفس بر سنو هست یک اماره، دو لوامه، سه مطمئنه اولین مرحله، مرحله اماره هست، نفس اماره نفس اماره چیه؟ اینه که ببین در فطرت هر نفسی و در طبیعت و سرشت هر نفسی خداوند گذاشته که او انسان را عمر می کند به اون چیزی که مطابق هوای نفس باشه خواهش نفس باشه در این نفس خدای تعالی خواهشاتی پیدا کرده از قبیل گناه معصیت لذات شهوات لذا هر نفسی مرحله ابتدائیش مرحله اولیش این هست که او را انسان را امر می کند امارتون اماره مبالغه عامره هست یعنی کسرت عمر کننده امرکننده دستور دستور بار بار به شما دستور میده این گناه را نگاه کن اون گناه را گوش کن اون حرام را بخور اون حرام را کسب کن اون مال ناجائز را مال خودت بکن اون بردار هی در هر گناهی هر نو گناهی چه دیدنی باشه چه چشیدنی باشه چه گوش کردنی باشه چه بویدنی باشه چه کسب کردنی باشه همه را انسان را میگه این بکن اون بکن این هست نفس اماره وقتی که نفس انسان اماره باشد و انسان هیچ نقیدی داشته نباشد یعنی پایبندی هیچ شرعی نباشد پایبند خدا نباشد دستور خدا نباشد اون وقت انسان به طرف نفس میره اون زمان است که این انسان فاسدترین انسان میشه این انسان هر کاری میکنه ظلم میکنه فساد اخلاقی میکنه حق انسان ها را تلف میکنه بزرگترین جنایت ها را روی زمین انجام میده حتی و یقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء خدا را هم میکشه وقتی که این انسان نفسش هیچ قید و بندی داشته نباشه به حال خود رها بشه متاسفانه خیلی از مردم هستن از جوان ها هستند که نفس خودشون را رها کرده چی دلشون میخواد انجام میده هرچی دلشون میخواد و بعضی ها در خوشگذرانی کردن نفس مبالغه میکنند اینقدر پول مصرف میکنند تا از بس که لذات استفاده کردن بقیه لذات و شهوات برایشون چی هست عادی شده یک سری کارهایی و مسائلی را انجام میدن که اصلا از تصور انسان بالا از قابل ذکر و گفتنم نیست لذا اینها کسانی هستن که کاملا نفسشون بی لگام است. به حال خود رها هست این نفس انسان را مستقیم به جهنم میبره خدا نجات بده لذا مال حرام میاد از طریق دزدی میاد از طریق رشوه میاد از طریق خون انسان ها میاد برو فلانی را بکش 100 میلیون میاد کار میکنه فقط پور بیاد یعنی این نفس برایش دیگه هر کاری را مشروع میکنه هر جنایتی را برایش روا میکنه این نفس اماره اما اگر مؤمن باشی شریعت داشته باشی شما چیکار میکنی شریعت را لگام خودت را به دست شریعت میدی افسار را به دست دی دین میدی دست قرآن میده، هرچی که قرآن بگه، هرچی شریعت بگه، من اون را انجام میدم. این دیگه نفس اماره ماررت کم کم چی میکنه کنترل نفس میگه این کار بکن میگه نه. فلان عمل را انجام بده می میگه نه. لذا این نفس خودش را کنترل میکنه. این نفس خودش را کنترل میکنه. گا گاهی مرحله ابتدایی که باشه؟ گاهی از او اشتباهی سر میزند، گاهی می گا میکند. فورا ملامتش میکنه چرا این کار را کردی نماز را ترک کرد فورا استغفار میخوانه قضایش میاره فلان گناه را کرد خدای من اشتباه کردم غلط کردم توبه میکنه لذا وقتی که بار بار نفس خودش را ملامت میکنه و بر هر چار را بر هر دو جلوی نفس را میگیره ملامتش میکنه لذا این زمان نفس وقتی بی این مرحله برسه میشه نفس لوامه که بر کار خلافشیه معلومات کننده هست. اما بعدا کسی همین را ادامه بده. یعنی تا آخر افسارش لگامش در دست شریعت باشه، دین باشه و خدا باشه. هرچی که خدا بگه همون انجام میدم. هرچی رسول الله بگه بر اساس اون عمل میکنم. این آخر نفسش عادت میکنه. از نفس را هرچی که بلاخره عادت بده همون عادت میکنه آخر نفسش فقط و فقط بر طاعت مطمئن میشه بر چی مطمئن میشه؟ طاعت اگر نماز صبح فوت بشه چنان پریشان میشه و گریه میکنه گویی که پدرش مرده اصلا از این مصیبت برای او مصیبتی بزرگتری نیست انسان وقتی که نفسش را به این جا رسانه اون نفس چی میشه؟ نفس مطمئنه میشه پس نفس مطمئنه کی شد خدا دستور میده این نفس مطمئنه را هر وقتی که مردی یا ایوها نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه برو پیش پروردگارت پیش ربت اون ربی که تو از اون رب بالاخره راضی بشی چنان به تو خلعت میده که تو از او راضی بیشی مردیه تو چون مردیه هستی او هم از تو راضی شده هر چیز را مطابق حکمی او انجام دادی مطابق دستوری او انجام دادی لذا تو مردیه هستی راضی شده لذا این مرحله سوم نفس خدا به ما توفیق میده بینجا برسانیم که فقط آرامش نفس در طاعت و بندگی آرامش نفس در سجده آرامش نفس در از به خدمت شما که شهادت در راه الله است صحابی رسول الله به کفار و مشرکین چه پیامیدات سوگند یاد کرد که ما وقتی که جان بدیم و شهید بشیم چنان لذتی حاصل میکنیم که شما اون لذت را تو شراب ها احساس نمیکنید ما چنان بیشتر لذت احساس میکنیم اون وقت انسان دیگه در فرمان خدا و در دستور خدا هر کاری که انجام بده مطمئن میشه و لذتی که انسان از نماز شب بدست میاره از آه, آه و ناله نیم شب و از راز و نیاز با معبود خود در نیم شب احساس میکنه در هیچ چیزی اون لذت را حاصل نمیکنه یا زانگه که خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روزه به یک جو نمی خرم ملک نیم شب که خدا به من داده چه لذتی چه احساسی من احساس میکنم اولیاء الله به این درجه رسیدند لذا طولانی شد دور رفتیم اللہ عزوجل این نفس لوامره که در مسیر خوبی قرار گرفته تا خطا بكونه خودش را ملامت میکنه این نفس لوامه را شاهد میگیره چون این هم میدونه که قیامت برپا میشه چرا تو نفست را ملامت میکنی بر نماز نخوندن چرا ملامت میکنی بر گناه کردن چون میترسی از قیامت قیامت را باور داری پس الله میفرمایه این نفس لوامه هم شاهد است ایحسب الانسان ان نجمع عظاما انسان فکر میکنه انسان می پندارد که هرگز ماجم نمی کنیم استخوانها اشرا چرا جمع می کنیم بالا ای بالا نجمه ماجم می کنیم قادرین علا ان سویی بنانا ما قادر هستیم بر این که باندها اشراهم هم بکوی بکنیم یعنی این بندها بندهایی که انسان دارد این زرافت خاصی دارد. ما علمش را نداریم کسانی که علم پزشکی خوندن البته هر پزشکی، کسانی که تخصصشون همین عصبها باشند اونا میدونند که یک بند چندین عصب داره یک بندی که راحت ارز کنم که دست و پا و بندهای ما بالا و پایین میشه این چندین عصب کار میکنه این عصبها چنا زرافت داره مویرگهایی هستن که انسان با چشم هرگز نمیتونه اونها را ببینه دستگاهی خاصی میتونه اونها را نشون بیده لذا اینها اگر کنده بشه کاری هیچ دپتوری نیست کاری هیچ پیزشکی نیست وقتی که دوباره بتونه این را جاب اندازه این را تنظیم بکنه لذا اون های کچلو وقتی که از بے میره الله تعالی میفرمائیم ما انها را هم دوباره وصل میکنیم و این بند را دوباره برابر میکنیم بلا قادرین علی ان سوف مفهومش اینه که وقتی که خلاوند عزوجل اون ظرافت های بدن را میدوند اون ظرافت هایی که در این دنیا اونها حل نشده و مشکلش برطرف نشده اونها را وقتی خدا حل میکنه این استخان بزرگ را چطور جمع نمیکنه بل یرید الانسان لیفجر امامه الله میفرماید بلکه انسان میخواهد نسبت به ما قبلش فجور کند فجور به بمعنی چی؟ لیفجوره یعنی لیوکذبه تکذیب کنه امامه یعنی ما امامه و. این انسان کی اینطور اعتراض میکنه انسان میگه ایزا کننا ایزا من هر وقتی ما تبدیل به استخان پوسیده بشیم ما دوباره زنده میشیم. این انسان چرا اینطور میگه چرا این طور اعتراض میکنه؟ چون هدفش اینه بل یورید الانسان لیفجر امامه ای لیوکزم ما امامه این انسان هدفش اینه که آینده قیامت را میخواد تکذیب کنه قیامت را باور نکنه به همین خاطر استهزان با دیده شک و تردید و به صورت انکار سوال میکنه یسأل ایان یوم القیامة این انسان سوال میکنه کی هست روز قیامت الله جواب میده فاذا برق البصر تخويف اخروی از احوالی و شمئ از احوال قیامت را الله اینجا بیان فرموده فاذا برق البصر زمانی که چشم برق بزند یعنی اون برق برقی که در قیامت هست اون بزند و خسف القمر ماه نو بنور بشه و جمع شمس و القمر خورشید و ماه جنب بشند یعنی به ساعت خورشید و ماه جمع کرده بشه یقول الانسان انسان میگه در اون روز این المفر از بس که وحشت است کجاست جای فرار میخواد فرار بکنه بگریزد یه جای پنهان بشه ولی نیست مفری برای انسان جای فراری نیست کلا لا, لا وذر که اللہ ردعیه هرگز هرگز راہ فرار و جای فراری نیست لا وزر یعنی لا ملجا پر آگای وجود ندارد الی ربک یوم اذن المستقر بسوئی رب در اون روز مستقر هست یعنی جائے قرار ان جائے هست که خدا تائمی کنے یونبع الانسان انسان خبر داده میشه یوم اذن بما قدم و در اون روز انسان خبر داده میشه اون چیزی که تقدیم کرده و تأخیر کرده ببین خیلی چیزها را ما جلوتر میفرستیم انسان از دو حال خالی نیست یا گناه میفرسته یا ثواب میفرسته یا کار خوب میفرسته یا کار بد میفرسته یک کسی هست که پیش از خودش و همچنین در دنیا عمل میکنه نماز میخانه، تاعت و عبادت و رسیدگی بفقراء و زکات و حج و روز اینا چیزیں اس کے جلوتر میفرستے ہیں یہ کیسی اس کے میخاری و شراب و زنا و فساد و همه اینها را جلوتر فرسته ما اخر یعنی چی پشت سر میگذارد یک کسی هست که میره از این دنیا فرزندان صالحی پشت سر میگذاره استادی شاگردان با تقوا و با ایمان پشت سر میگذاره یک خیری مسجدی را پشت سر میگذاره چاه و قناتی را میگذاره که همه از او استفاده بکنن این ما آخر است اما یک کسی هست که میره انسانهای فاسدی را تربیت کرده خونخوار و خونریز اینها را پشت سر میگذاره خودش میره پشت سرش ارز کنم که قهبخانه و نمیدونم شرابخانه و فسادخانه را بجا میگذاره لذا اینه که ما قدم و آخر به انسان گفته میشه انسان چه جلوتر فرستادی و چه پشت سر گذاشتیم بلیل انسانو على نفسه بصیرا بلکه انسان بر نفس خودش, خودش بیناس خودش میدونه چه کارایی کرده ولو القام معاذیرا گرچه بحانه ها را پیش میکند القا می کند معاذیرا بحانه ها ماذرت خواهی ها لا تحرک بهی لسانک لتعجل بی علماء میگویم مفسرین این جمله محترزه است در لابلاء آیه بظاہر این آیه هیچ مناسبتی با ما قبل و ما بعد نداره بحث بحث قیامت بود بحث بحث قیامت بود آیات که نازل می رسول الله صلی الله علیه وسلم تون تون زمزمه می کرد تفراموش نشه بعدن برای امت بخونه بعدن برای مؤمنین بخانه وقتی که زمزمه میکرد و زبانش را حرکت میداد. خداوند در وسط وحی بهشون فرمود لا تحرک بهی لسانکه شما زبانت را حرکت نده لتعجله به تاکی عجله بکنی نسبت به این یعنی زوزوب بخانی نه ما چند وعده تو میکنیم یک این علینا جمعه وعده اول اللت. وعده اول اینه که بر ماست کردن این قرآن و مطالب قرآن در سینه جامع کردن قرآن در سینهت دو و قرآن جاری کردن قرآن بر زبانت، جاری کردن قرآن بر زبانت. فاذا قرآن آهو وقتی که ما خاندیم به وسیله فرشته، فت به قرآن بعد از اون تو دنبال کن خاندانش را خدا با زبانت میاره همه چیز را. ثم ان علينا بيان السومي وعده بعداً بیان آن، تفسیر آن، تشریح آن، بیان کردن مراد آن هم بر ماست. این را در قلب تو چی میکنی؟ القام میکنی؟ بعداً رسول الله صلی علیه و وسلم بیان میکنه، توضیح میده، این همو حدیث است. که <تصفح> مراد الله چیه؟ مطلب اینجا چیه؟ خب، ببینید، کلا بل تحبون العاجره، ادامه بحث گذاشته، در وسط پس این چی بود؟ جمله معترضه بود برای اینکه جمله معترضه برای چی بود برای اینکه عرض به خدمت شما رسول الله صلی الله علیه وسلم به وقت وحی و به وقت القاع قرآن در سینه ایشون توجه کند عجله نکند و ناراحت هم نشه همه چیز حفظ میشه برای این خدا فرمود اما بعضی از بزرگان ربط بیان کردند گفتند این هم بی ربط نیست شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه اینجا نکته جالب بیان فرموده فرموده که چون بحث گذاشته بحث قیامت بود نه بحث قیامت بود و زنده شدن مردها بود بعد از این که مرده تبدیل به خاک شده به خاکستر شده استخان پوسیده شده بعد از اون خداوند فرمود لا تحرک به لسانک می فرماید معنای آیه اینه که همان گونه که الله عزوجل قادر است اجزاء منتشره و بالیه و فرسوده انسان را جمع بکند همان گونه می تواند. ببین چند چیز را اعمال و اقوال و افعال گذشته و آینده انسان را هم جمع کند در یک پرونده قرار بدهد و همچنین قادر هست در سینه شما الفاظ منتشره قرآن را که اینها توسط جبریل بل تو همه اینها را جمع کند و بر زبان شما جاری کند لذا اینها با هم دیگه چی دارند؟ مناسبت دارند پس خداوند مند همو طور که قادر هست اجزای پوسیده شده و منتشره انسان را جمع کند افعال و اقوال و اعمال انسان را در گذشته و آینده هر چی کرده جمع کند همچنین قادر هست که قرآن را کلمات جدا جدا و منتشره قرآن مجید را هم در سینه شما جمع بکند. کلا بل توحبون قبلا ما خاندیم که بل یورید الإنسانو لیفجره اماما. انسان چی میخواد؟ انسان میخواد که نسبت به قیامت منکر بشه. لیفجر امامه یعنی ما امامه اون چیزی که جلوش است چرا میخواد ببین علت تی انکار قیامت چیئے اللہ انکار توحید چیئے انکار توحید و انکار قیامت برای این است که انسان گرفتار حب دنیا شده حب دنیا و شیرین دنیا نمیزار به چیزی دیگه فکر بکنند کلا هرگز اینطور نیست که شما انکار بکنید بل تحبون العاجلہ بلکه شما دوست دارید عاجله را عاجله یعنی چی دنیا نقد اصل معنی لفظی عاجله چیست؟ نقد هست ببین یکی از عاجله یکی از نقد عاجله همین دنیاست و آجله اونی که عجلش تعیین وقتش مدتش تعیین یعنی آخرت شما آخرت را انکار میکنید چون اون ثواب و عجر هنوز نمی بینید این مال دنیا نغد جلو می تست. كلا بل تحبون العاجلة بل كشما دوستاريد عاجل را نغدير الدنيارا وتذرون الآخرة وآخرة را ميقزاريد اما الله مفرمي آخرة بل اي اهل ايمان جاي خو بي بشارت وجوه يومئذ ناضرة چهرهاي هستن در انروز آخرة ناضرة سرسبزند ناظره بمعنی تر و تازه شاداب الی رب ناظره انها بسوی ربشان بیننداند تماشا کننده اند سب کردم آیه که در اون آیه بحث چی هست رؤیت پروردگار اینه الی رب ناظره بسوی ربش نگاه می کنند انها و, و وجوه یوم باصره و بسیاری چهره دیگه هستند در اون روز باصره باصره یعنی ابوس گرفته سیاه کالحا شدیدت العبوس جلالین گفته سیاه و خیلی گرفته تظنو ان یفعل بها فاقره این چهره ها میپندارن فکر میکنن همون طور که فکر میکنه همون هست ان یفعل بها فاقره با اونها انجام میشه چی کمر شکننده ای فاقیرات سختی را میگن که کمر انسان را بشکند کلا کلا یعنی حق اذا بلغت تراقی زمانی که انسان روحش و نفسش برسه به ترقوه تراقی جمع ترقوه هست ترقوه اقصای حلق را میگن انجای که نفس انسان گیر میکنه انسان خیر خیر میکنه وقتی که به اونجا برسد و انسان داره جان میده دست و پا میزنه اطرافیان چی میگن؟ وقیل من راق میگن چه کسی هست که دم بکند؟ راق یعنی اون کسی که رقیه بخوند اون کسی که دم و تعویز بخوند دعا دانویس؟ دعا نویز زود زودی کسی را بیاری برش بخونه وظن انه الفراق اما خود او محتزر می که آنهو الفراق همان اینچیز جدایی باید دنیا را بیزاریم خودش وضعیتش را می دونی؟ والتفت الساقو بالساق ساق با ساق یعنی پا با پا جفت میشه یعنی انسان دیگه جامش میکنه. إلا رب بکیوما اذین المساک بسیار رب در اون روز سوق دادن اس یعنی می سوق میدن هدایت و راهنمایی میکنن برو به مأزور پروردگار حاضر شو. اونجا وقتی که حاضر میشه این انسان آخر چی کرده که حاضر بشه؟ چه جوابی داره؟ فلا صدق ولا صلا فلا صدق یعنی تصدیق کرده دین حق را ولا صلا نماز خانده یعنی هم فساد عقیده داشته هم فساد عمل ایمان نداشته فلا صدق ایمان که نداشته نماز هم نخوانده خدا را هیچ وقت سجده نکرده فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى اما تکذیب کرده بجای صدق و تولا پشت داد اعراض کرده بجای نماز خاندان بجای صلى ثم ذهب الى اهله يتمطى بعضی میگه این آیات درباره ابو جهل هست که این صفات مالی او هست ولی یک ابو جهل نیست هزاران ابو جهل بوده و خواهد بود همه را این آیش شامل میشه ثم ذهب الى اهله یتمطا نماز, نماز نمیخاند کفر میکنه نسبت به قیامت تردید داره سپس میرود پیش اهل خودش یتمطا غرور و تکبر نشان میده تمطی چرا میگن گردن بلند کردن را میگن کسی که خیری مغرور داشته باشه، یک گردن خودش را از بغیه بلند تر می دانه. اولا فاولا فا حلاکت برای تو ای انسان مغرور و متکبر فاولا فا پس حلاکت ثم اولا لك فاولا فا سپس بار دوم فم حلاکت برای تو پس حلاکت ای احسب یترک آیا انسان می پندارت کی ان کے بہال خود بلا تکلیف رہا میشه سودن یعنی بیکار بلا تکلیف هیچ سوالی ازش نمیشه این طور فکر میکنه اللہ می فرمانا بلا تکلیف تکلیف شروعان میشه الم یکونوتفه ممنی یمنا آیا مگر همین انسان نبود چون انسان انسان در برای آخرت عقل خودش را به کار میبره میگه معقول نیست که انسان تبدیل به استخان پوسیده و خاکستر بشه بعضی میپرسند میپرسن خب این اجزایی که انسان را میسوزنند و تبدیل به خاکسترش میکنند تو دریا میریزن اینا را خدا چطور جمع میکنه خب علم خدا را بر علم خودت قیاس نکن و قدرت خدا را هم بر قدرت انسان ضعیف قیاس نکن و بعد اگر بخوای با عقل و با ترازوی عقل ترازو کنی و بسنجی خب گذشته خودت را نگاه کن مگر نطفه نبودی این نطفه چطور تو را انسان با کمالی کرد این با عقل جور در میاد یک قطره آب بریزه یک جای یک انسان انجینینی بشه الا یک نطفه من منی یمنا آیا نطفه نبود؟ از منیی که یمنا شد، ثم مکان علقتم بعد از اون نطفه تبدیل به لختخون شد. یک لختخونی که لختخون نجسی بود. ولی فخلق فسوه کی بود که این را آفرید؟ چرا اونجا عقل را نمیگید که با عقل جور در نمیاد؟ چو میبینید. فخلق آفرید فسوه برابرم آفرید همه چیز را بیش داد. ذهن داد، حافظه داد، قلب داد، صلاحیتها داد، کمالات داد فجعل من زوجین ذکر و الانسا و از جالب همین،, همین نطفه را تقسیم میکنه یک بخشش مذکر، یک بخشش موانس، یک بخشش پسر، یک بخشش دختر فجعل منه هزوجین قرار داد از اون هر دو جفت را، از ذکر و الانسا هم مرد را، هم زن را لذا این پروردگاری که چنان نظام زیبا و جالبی دارد برای ادامه بقای شما انسانها برای ادامه نسل الله تعالی این طور جور می کند درست می کند ذلک بقادر بقادرین علی ان یحیی الموتا آیا این ذات قادر نیست قدرت ندارد بر اینکه مرده مردها را دوباره زنده کند چرا ندارد چرا انسان اینقدر؟ نفهمه هست و نمیفهمد چرا انسان از همون از وجود خودش استدلال نمیگیرد بلکه خودش فکر میکنه خدا میفرماید چندین جا خدای تعالی همین مثال را بیان فرموده که انسان نطفه بودی علاقه شدی تکه گوش شدی بعد استخوان آمد اینا همه در واقع اون کارخانه‌ای است که پروردگار درست کرده تو این دنیا آیا این ذاتی که این قدرت را داره و این ظرافت با این ظرافت ها شما را خلق کرده این نمیتونه شما را دوباره زنده کنه ده. چرا نتوند؟